بسم الله الرحمن الرحیم بنامی خداوند بیالوزا مهربان نهایت بارش خامیم فروفرستادن این کتاب از جانب خداوند صاحب قدرت مرنی و دانست که آمر زنده گناه پذیرنده توبه سخت عذاب کننده صاحب فضل و است، جز او معقولی نیست و سوی اوست بازگشت در آیات خدا جز کافران هیچ کسی مجادلن نمی کند. پس آمد و شد یعنی قدرت نمایی ایشان در شهرها ترافریب ندهد پیش از ایشان قوم نوح و بعد از آن گروه های دیگر حق را تکذیب کردند. هر امتی آهنگ آن نمود که پایانبر خیش را گرفتار سازد اینان در راه باطل خیش با مجادله پرداختند تا با وسیله آن حق را از پای درآرند پس ایشان را گرفتار ساختید ببین بی که عذاب الهی چی نبود به این ترتیب به حکم پروردگاری تو بر کافران محقق گردید که ایشان واقعا اهل دوزخ فرشتگان حامل عرش و پیرامون آن خوبی پروردگاری خیش را ستایش می‌کنند با او ایمان دارند و برای مؤمنان آموزش می و می گویند بار خدایا بر رحمت و علم خیش همه چیزها را فرا گرفتی پس و بکاران و پیروان راه خیش را بیاموز و آنها را از عذاب دوزخ ها. بر بروردگاران آنها را به بهشتهای جودانه درار که به ایشان وعده دادی و هر کسی را از پدران، همسران و فرزندانشان که صالح باشد نیست حقا که تو صاحب قدرت مونی و با حکمتی و ایشان را از بدیها ها نگهدار و هر کی را در آن روز از بدیها نگه داری واکن بر او رحم کردی و این است کامرگی بزرگ با کافران نگاه می شود واکن خشم خداوند از خشم شما بندگان بر شما بزرگتر است زیرا که به ایمان فرا خوانده می شدید ولی از آن انکار می کردید می گویند پروردگارا دو بار ما را میراندی و دوبار بار ما را زنده کردی به گناهان خود اعتراف کردی پس آیا برای بیرون شدن از دوزخ راهی هست؟ به ایشان گفته می شود کنون راهی برای بیرون شدن نداری این سبب است که چون خدا به یگانگی یاد می شد انکار می کردید و چون به او شرک آورده می شد باور داشتید اکنون داوری از آن خداوند بلند مرتبه و بزرگ است اوست که برای شما نشانه های خود را ارائه می کند و برای شما از آسمان روزی می فرستد و پن نمیگیرد. مگر کسی که با خدا رو می آورد پس خدا را با اخلاص و سنیما نیایش کنید اگرچه کافران نخوش او سر اوست رفعت بخشنده درجات و صاحب عش، وحی را بر هر کس از بندگان خود که بخواهد به فرمان خیش نازل بیکند تا مردم را از روبرو شدن همگانی بیندهد روزی که مردم بر گونه چشم چشمگیر نمودار می شوند و بر خداوند هیچ چیز پوشیده نمی باشد خداون می امروز پادشاهی از آنی کیست خدا می از آن خدای یک تای پیشار غالب امروز هر کس در برابر کاری که انجام داده جزا داده می شود امروز هیچ ستمی نیست حقاک خدا در حساب گرفتن سریع است ایشان را از روز خیامت بترسان آنگاه که از غسی بسیار دلها بگلوگا یعنی جان لب برسد و برای ستمگاران غمخاری نیست و نه هم گری که سخن او پذیرفته شود خداوند خیانت چشمون و آنچه را سینه ها پنهان می کنند می داند. و خداوند به حق حکم می کند و کسانی که ایشان به آنها جز خدا نیایش می کنند هیچ فیصله را کرده نمی توانند حقا که خداوند هم او شنوا و بیناشد آیا ایشان در زمین سفر نکرده تا ببینم بی که عاقبت کسانی که پیش از آنها بودند چی شد؟ ایشان هم در قدرت و هم در آثاری که در زمین از خود به جا گذاشتن برتر بودند، ولی خداوند ایشان را به گناهانشان گرفت و در برابر عذاب خداوند برای ایشان هیچ نگه دارنده نمود این به خاطر آن بود که برای ایشان پیامبرانشان با آیات روشن آمدن اما ایشان انکار کار ورزیدن پس خدا ایشان را معاخزه کرد بگمان که او نیرومند و سخت عذاب کننده است بیگمان موسی را با های خود و حجت آشکارا فرستادیم به سوی فرعون هامان و قارون ولی ایشان گفتند که وی جادوگری درغگوست رنگامی که او از نزد ما با دین حق به سوی ایشان رفت گفتند پسران آنانی را که با او ایمان می آوردند بکشید و دخترانشان را زنده نگه دارید ولی دسیسه کافران جز در گمراهیشان اثر بخش نیست راون گفت مرا بگذارید تا موسا را بکشم و بگذارید برای نجات خیش بروردگارش را بخاند میترسم مبادا دین شما را تغییر دهد یا در زمین فساد برپا کند موسیٰ گفت من به پروردگار خود و پروردگار شما از هر متکبری که به روز حساب ایمان نمی آورد پناه می برم مرد مؤمنی از اهل فرعون که ایمان خود را پنهان می داشت گفت آیا مرد را می کشید که می گوید پروردگار من خداوند یک تاست حالان که او واقعاً به شما موجزه های روشنی را از جانب پروردگار شما آورده است؟ اگر دروغگو می باشد گناه دروغگویییش به دوش خود اوست و اگر راستگو باشد بعضی از عذابهایی که وعده می دهد به شما عاید خواهد شد بیگمان خداوند هیچ که کذابی را رهیاب نمی سازد ای قوم من امروز پادشاهی از آن شماست و بر این سرزمین مسلط هستید اگر عذاب خدا ما را فراگیرد پس کیست که ما را از آن نجات دهد فران گفت من جز چیزی را که با آن باوردارم به با شما ارائه نمی کنم و شما را جز برای راست رهبری نمی کنم آن مرد مؤمن گفت ای قوم من بگمان با شما از مانند روزی که به سر افضاب آمد می ترسم مانند سرنوشت قوم نوح عاد سمود و کسانی که بعد از ایشان بودند. و خداوند بر بندگان خود اراده هی هیچ ستمی ندارد ای قوم من بر شما از روز پراغندگی می ترسم روزی که رو می گردانید و فرار می کنید و برای شما از عذاب خداوند هیچ نگه ای نیست و کسی را که خداوند گمراه سازد برای او هیچ رحیابی نیست و ویگمان یوسف پیش از این با ماجزه های سوی شما آمد ولی همواره در مورد آنچه او برای شما آورده بود در شک بودید. تا آنگاه که وفات یافت گفتید هرگز خداوند بعد از او پیانبری نمی فرستد به گونه خدا هر بی باکی شکاکی را گمرات می کند. کسانی را که در آیات خدا که به آنها آمده ارست بدون هیچ دلیل جدال می ورزند و این کار شدیدن خشم خدا و خشم مؤمنان را برمی بدین بدین گونه خداون بر هر دل متکبر و سرکش مهر می نهد. فرعون گفت ای هامان برای من قصری یعنی بنای مرتفعی بساز تا مگر به وسایلی دست یابم وسایل بالا شدن به با ها را تا به سوی خدای موسا بالا روم و یقینا من او را دروغگو می پندارم این چنین با فرعون عمل زشت او خوشایند جلوه داده شده و از راه حق باز داشته شد و دسیسه فرعون چیزی جزیان نبود مرد مؤمن گفت ای قوم من مرا پیروی کنید تا شما را برای راست پرساخت ای قوم من زندگی این دنیا متای بس ناچیز است و بیگمان آخرت همان است سرای جاودان، کسی که بدی کند جزا دادن نمی شود مگر مثل آن و کسی که خوبی می کند خواه مرد باشد یا زن و مسلمان هم باشد چنین مردمی به بهشت داخل می شوند. در آنجا به ایشان و روزی به حساب داده می شوند. ای قوم من، مرا چی شده است که شما را به سوی نجات فرا می و شما مرا به سوی آتش می مرا به این فرا می که از خدا کار کنم و به وی چیزی را که به آن علم ندارم شریف بیاورم. در حالی که من شما را به سوی ذات صاحب قدرت مونی و بسیار آمر زنده میخوانم بر این باورم که چیزی که شما مرا به سوی آن میخوانید نه دعوت پسندیده در دنیا دارد و نه هم در آخرت و یقیناً که بازگشت ما به سوی خداست و مصفون یعنی کافران هم ایشانند اهل دوزخ چیزی را که به روی خیرخواهی به شما میگویم گویم به زندی یاد خواهید کرد و کار خود را به خدا می سفارم حقا که خداوند و بندگان خود بیناست پس خداوند او را از شر که ایشان به کار می برند نگه داشت و برعکس بر فرعونیان عذاب شدیدی نازل گردی باتش دوزخ صبح و شام بر ایشان عرضه می شود و در روز قیامت گفته می شود فرععونیان را به سختترین عذاب درارید به یاد آورید چون در دوزخ باید یکدیگر جدال می کنند ناتوانان به متکبران میگویند ما پیرویش شما بودیم آیا اوکنون میتوانید توانید قسمتی از آتش را از ما دفع کنید متکبران میگویند ما همگی در آتشیم بیگومان خدا در میان بندگان خود به عدالت حکم کرده است دوزخیان با پاسداران دوزخ گویند از پروردگان خیش بخواهید الله قلب برای یک روز عذاب ما را تخفیف بدهد پاسداران دوزخ گویند آیا برای شما پیغمبران شما با نشانه‌های روشن نمی آمدند و دوزخیان میگویند بلی نمی آمدند پاسداران میگویند پس اکنون خود شما دعا کنید و دعای کافران جز در گمراهی نیست بگمان ما پیامبران خود و مؤمنان را در زندگی دنیا و نیز در روزی که گواهان به پا خیزند کمک میکنیم روزی که معذرت خواهی ستمگاران شده ندارد و برای ایشان لعنت است و نیز برایشان شان دوزخ به حیث جایگاه بد آماده شده است. ما به و وسایل هدایت را ارزانی کردیم و به بنی اسرائیل کتاب را میراست دادیم. هدایتی و پندی برای خردمندان پس صبر کن بی گمان وعده خدا حق است و برای گناه خیش آمرزش بخوا و صبح و شام پروردگار خیش را پیاپی ستایش کن بی کسانی که در آیات خدا بدون آنکه به ایشان دلیل آمده باشد مجادله می کنند در سینه‌هایشان جز کبر و چیزی دیگری نیست ادعای مقامی را می کنند که هرگز با آن نمی رسند پس با خداوند پناه بجوی بیگمان هم اوست شنوا و دانا واکن آفرینش آسمان ها و زمین از آفرینش انسان ها بزرگتر است ولی اکثر مردم نمی دانند بینا و نابینا هرگز با هم برابر نیستند و نه هم آنانی که ایمان آورده و مصدر کارهای نیکو شدند با مردم بکار برابر بوده می توانند کم از آنچه پند می گیری کیامات قیامت آمده نیست در آن شکی نیست مگر بیشتر مردم این را باور ندارند. و پروردگار شما گفت مرا نیایش کنید تا خواست شما را اجابت کنم کسانی که از پرستش من تکبر ورزند حتما به خوری وارد دوزخ می شود خداوند ذاتیست که شب را برای شما آفرید تا در آن بیاساید و روز را روشنه بخش آفرید من خداوند به مردم فضل بیکران مبذول می دارد مگر بیشتر مردم سپاس نمی گذارد. این است خدای پروردگار شما آفریننده هر چیز، جز او خدایی نیست پس چیگونه از حق برگردانیده یعنی منحرف می همچنین کسانی که از آیات خدا انکار کار می کردن از حق برگردانیده یعنی منحرف می شودن خداوند ذات است که برای شما زمین را قرارگاه ساخته است و آسمان را سخفید و شما را تصویر کرد و صورتهای شما را نیکو گردانید و شما را از چیزهای پاکیزه روزی داد این است خداوند پروردگار شما با برکت است خدای پروردگار عالمیان اوست زنده حقیقی و دایمی جز او معهودی نیست پس او را به اخلاص نیایش و فرمانبری کنید ستایش از آن خدای پروردگار عالمیان است بگو چون به من نشانه های شنی از جانب پروردگارم آمد از پرستش کسانی که شما جز خدا و ایشان نیایش میکنید جدا ممنوع شدن و معمور شدم که تنها و پروردگار جهانیان تسلیم باشم اوست که شما را از خاک، سپس از نطفه و بعد از آن از علاقه یعنی خون بسته آفری بعد از آن شما را به صورت طفل بیرون می آورد سپس زمینه آن را فراهم می سازد که به کمال قوت خود برسید و با زمینه ادامه زندگی شما را فراهم میگرداند تا که همسال شوید گروهی از شما پیش از این مرحله میمیرند ولی به طور عزیز زمینه ادامه زندگی شما را فراهم می‌سازد تا به معاید معین برسید و تا با که شما درک کنید اوست که زندن میگرداند و میمیراند و هنگامی که چیزی را اراده کند به آن میگوید شو پس می‌شود. آیا سوی کسانی که در مورد آیات خدا مجادله می کنند ندیدید که چگونه از حق باز داشته می شود؟ کسانی که این کتاب و سایر کتب را که پیانبران خیش را با آن فرستادم تکلیب کردند بزرگی بزشتی این عمل خیش پی می برند انگام کتاب ها و گردنشان انداخته می شود و زنجیرها ها نی و سوی دوزخ کشانده می شود نخست در آب جوشان و سپس در آتش به سختی سختانده می شود سپس به ایشان گفته می شود جایان چیزهای یعنی معبودانی که ایشان در شریک خدا قرار می دادی و به جز خدا آنها را پرستش می کردی می از پیش ما گم شدن یعنی ما را در خلاق گذاشتند بلکه اکنون دانستیم چیزی را قبلا پرستش نمی کردیم که قابل پرستش باشد این گونه خداواند کافران را گمراه می سازد. اکنون به های دوزخت درایید و در آنجا همیشه به سر برید. پس چی بد است مسکنی متکبران؟ پس ای پیانبر صبر کن، بیگمان وعده خداوند حق است. اگر عملی شدن بعضی از وعده های را که به ایشان دادیم به تو نشان بدهیم یا تو را پیش از آنکه همه این وعده ها در عمل پیاده شود، به هر حال همه ایشان به سوی ما باز می و همه وعده ها بر ایشان عملی می شود بگمان پیش از تو نیز پیانبرانی را فرستادی سرگذشت بعضی از ایشان را به تو بیان کردیم و بعضی شان را به تو بیان نکردیم برای هیچ پیامبری نیست که آیه ای را جز به اجازه خداوند بیاورد پس چون امر خداوند صادر شود موضوع به حق فیصله می گردن. و در آنجاست که اهل باطل خسارمند می شود خداوند از آنکه برای شما چارپایان را آفرید تا بعضی را مرکوب خیش قرار دهید و از بعضی تغذیه کنید و افزون آن در آنها برای شما منافع دیگر است و نیست تا به وسیله آنها به برآورده شدن نیاز دلهای خود برسید و بر آنها و بر برکشتی ها سوار می خداوند به شما نشانه های خود را می نمایاند پس از کدام یک از آیات خداوند این کار می ورسید؟ آیا به روی زمین سیاحت نکردند تا بنگرند که سرنوشت پیشینیانشان چیگونه بوده است؟ پیشینیان از آنها بیشتر بودند و در زمین از روی نیرو و آثاری که به میان آورده بودند فیزونتر بودند ولی هیچ از این کارهایشان عذاب را از ایشان دفع نکرد. چون پیامبرانشان نشانه های روشنی را رو به ایشان آوردن دانش و مهارتی که خود داشتن شاد بودن و غیر آن را بی ازش می پنداشتند ولی آنچه را می کردند ایشان را فرو گردن پس چون زور عذاب ما را دیدن گفتند به خداوند یگانه ایمان آوردیم و از آنچه به وسیله آن شرک می انکار کردیم اما وقتی که زور عذاب ما را دیدن ایمانشان بر ایشان سودی نداشت این از روش الهی که در مورد بندگان پیشین او به کار برده شد و در این حال است که کافران زیانمند شدند